اما در حال حاضر میخوام به بخش دوم توضیحات درباره ارتباط میان هیبنوتیز و تمرکز به پردازم خیلی خوب دقت کنید چون نکات مهمتری خدمتون میخواد گفته بشه با توجه مقدمه ای که در فایل و در درس قبلی گفته شد ببینید موضوع این هست که ذاتا تمرکز و توجه انسان محدوده اون کسی که صبح بیدار میشه و یه لحظه تمرکزش رو میبره به سمت یه بدبختی خاص یا میبره به سمت یه اتفاق عالی، یه خاطره عالی؟ خب اتفاقی که میفته اینه که بعد از اون چه بس اون آدم در ادامه روز هم دیگه کاملا محو انرژی ها و فرکانس متناظر با همون فکر اولش در زمانی که صبح از خواب بیدار شده بشه و کل روزش شجورایی رقم میخوره ذاتن انسان اینطور هست که با تحجب اینکه، یک پهنای تمرکز محدودی داره شما تو هر لحظه به چیز محدودی میتونید متمرکز بشید بر این اساس وقتی که پهنای تمرکز و توجه محدودتون رو روی یک چیز خاص روی یک موضوع خاص روی یک کس منفی یا روی یک کس مثبت میذارید شما در واقع دارید کل پهنای وسیع خوشیاریتون رو ریز میکنید روی یک ایده روی یک جمله روی یک حرف خاص و وقتی این اتفاق میفته شما وارد اون تونل واقعیت خاص میشید. شما به سادگی میتونید ببینید که در طول تاریخ هم انسانهای مختلفی وجود داشتن که یه یهوی ایده خاصی رو گرفتن و زوم کردن روش و قفلش شدن و قفل شدن روی همون ایده خاص دقیقاً ایدئولوژی اونها رو رقم زده، کلی داستان، کلی مشکلات یا کلی رویدادهای خوب رو ممکنه برشون رقم زده باشه که این رو میتونید با مطالعه تاریخ هم ببینید که به شکل ذهن انسان ذاتاً دوست داره که هیپنوتیزم بشه شما دائما در حال تجربه سطحی از هیپنوتیزم هستید بنابراین اگه بخوایم بگیم متضاد هیپنوتیزم چیه شاید بشه گفت مدیتیشن چیزیه که به نوعی متضاد هیپنوتیزم محسوب میشه توی مدیتیشن البته خب انواعی از مدیتیشن هستن که شما روی یک چیز خاص متمرکز میشید ولی به صورت کلی توی مدیتیشن شما افکار رو لتگو میکنید رها میکنید فقط توی لحظه هستید هوشیاریتون رو باز میکنید وسیع میشید قفل نمیشید روی یک یا چند موضوع خاص همه چیز رو رها میکنید هوشیتون رو گسترش میدید اما توی هیپنوتیزم توی هیبنوتیزم شما میاد قفل میشید روی یک ایده روی یک حس روی یک موضوع خاص و خودتون رو هیبنوتیز میکنید روی یک تونل واقعیت خاص و منورین ارتباط میان تمرکز و هیبنوتیز رو متوجه شدید ارتباط میان تمرکز و هیبنوتیز و مدیتیشن رو هم احتمالا متوجه شدید که چگونه هست و در کمیق این موضوع چیزیه که برای شما بسیار مفید خواهد بود خیلی اوقات ممکن شما عین هیپنوتیزم کردن یک فرد نیاز پیدا کنید که اول از همه ذهنش رو باز کنید از هیپنوتیزم فعلی که توش گیر کرده از تونل واقعیت فعلی بیرون بیاریدش اون رو در لحظه حاضر کنید و بعد تمرکزش رو ببرید روی یک موضوع خیلی ریز و خاص روی یک جمله خاص روی یک احساس و رویداد خاص و بعد اهدافی که دارید رو به ترتیب محقق کنید توی اون مکالمه توی اون ارتباط و بنابراین خیلی مهمه که شما هم بتونید تمرکز رو روی یک موضوع خاص ببرید یعنی فردی هیپنوتیزم کنید و همین که تمرکز اون فرد رو دوباره باز کنید عقب بیارید وسیعش کنید تا بعد بتونید روی موضوع دیگهی که مدن نظرتون هست هیبنوتیزمش کنید